حول ولا قووب الله بالله عليه لظیم سونله الله ما كل ولی کل وجه تبن حسن في به انوار و هدایت از طبقات راحل اعظمت جهان الله تالا فرج و شریف و تاجیل در فرج حضرتشون به ذکر صلوات و محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج قدیم احضر آقا مولامون علی ابن ابی طالب و بیبی بی دو عالم خانوم فاطمه زهرا سلام الله به نیابت از آقا سید و شهده صلوات خط بفهم میده رفت هم مقم و گرفتاری از همه دوستان و امیراد مومنین هر که توی این حالا هم آقامون امیراد مومنین رو دوست داره انشاءالله به بلکت این شب ها از فتنه های آخر و زمان نجات پیدا کنه محضر آقام و اولام قمر و نیاشم صلوات خط <تصفيق> الحمدلالله خدا رو شاکرین منت سرمی گذاشتن اجازه دادن یه بار دیگه دوره هم جمع بشیم گر فضایل آقا و آقا مولاون امیر المامونین علیه ابن عبیتال و و اما مقدمتن جهت این قلبمون نورانی بشه فضایل آقا مولا و نمیر المومنین چون اصلا یه مدتبه هم اردی است که کردم قدمتون وقتی صحبت از قصه آشوراس وقتی صحبت از قصه سید ما هر پیغامی رو میتونیم منتسب کنیم به سید میتونیم بگیم پیغام سید و نماز اول وقت بود نمیدونم روزه بود زکات بود خمس بود همه اینا رو میتونیم بگیم چرا چون کل خیر فی وابل حسین علیه السلام هر خوبی هست سر خونه امام حسین. لذا هر خوبی هست میتونی منتسب کنی به سیدش. اما حقیقت اصلی جریان آشورا زنده نگه داشتن بحث قدیر بود. والله همه این امور ظاهری داش انجام میشد. نماز میخونن روزه میگرفتن ظاهرا همه دین داشتن. نماز جماعت جماعت‌ها برپا بود. روزه میگرفتن، خاموش میدادن، زکات میدادن ظاهر دین پا بود اون که مقفول واقع شده بود حقیقت دین، حقیقت نماز یعنی ولایت آقامون امیر بود عرض کردیم همه این بسات هم مقدمه بحث اینه که تو عالم یعنی هدف خلقت تو عالم محقق بشه و بحث یعنی این ویز قشنگ در نبود. منظورم همون ازال شده اون که هیچ کار بکنه یعنی است کنه. ارزم خدمتتون که تو عالم خود خدا فرمود من بر اساس محوریتی خلق کردم جهان رو. حالا وارد اون بحث نشیم. نکته‌ای که باید دقت بکنیم همه بحث ما که ظهور حضرت صاحب جلاله تعالی فرجه و شریف هست در کتابی که از داری الله سنت راجع به بحث رجعت نوشتن و عالم رجعت نوشتن ببینی که وقتی میرسن به بحث رجعت میفرمایند ظهور حضرت صاحب ظهور بقیت الله العظم جلاله تعالی فرجه و شریف فرج ایشان فرج سقراس ظهور سقراط ظهور بعد از اینکه خب چند دقیقه روی بحث وقت بذاریم وقتی جهادر صاحب ظهور میکنن چه اتفاقی میفته عقول کامل میشه همیشه دید 27 حرف علم بر همه باز میشه همه های دنیای مردم هم حل میشه که چه اتفاقی میفته امام صادق علیه السلام فرمودن همه اینها وقتی هدف حضرت صاحب محقق می شود که همه مردم عارف معارف سید الشها ده بشن همه امام حسین رو هدف ظهور محقق میشه. چرا باید هدف ظهور این باشه که همه امام حسین رو چون بعد از حضرت صاحب آقا مولان و مولا نو عبدالله الحسین رجعت می کنند و تشکیل حکومت میدن همه این تکامل عقول تکاملش علمها فراغت مردم از همه گرفتاری های دنیایی و مریضی و اینها برای اینه که همه حواس جمعه سید و شهده بشه و امام حسین رو بشناسن بعد روایت میگه امام حسین اینقدر حکومت میکنن که عبروانشون روی صورتش روی چشمانشون رو میگیره یعنی خیلی حکومت میکنه. بعد همه اینها مقدمه است بر فرج اصلی و ظهور اکبر یعنی رجعت آقا و مولا و نمیر المؤمنین علی ابن عبی طالب تازه امیر رجعت بکنن و زهور بکنن این همون مقدمه بر اوست کل عالم خلقت هم مقدمه بر ولایت امیر دیشب دیشورز کنم خدمتون آقا رسول الله فرمودند کل رسالتی و نبوتی همه رسالتم همه پیغمبریم برای نشر ولایت علی ابن عبی طالب پس نظام حواسود چی جمع باشه که اگر بساط سید و شهدات و آلم پیدا می کند، همه عاشق امام حسین حتی مسیحیه، یهودیه، عرمنیه، بطپرسته امام حسین رو میشناسه و به او ابراز محبت میکنه اینا مقدمه طریق امام باقر علیه السلام فرمودند در بحر حقیقت، در دریای حقیقت که دریای معارف و فضائل امیر المؤمنین علیه ابن طالبه چی سریع ترین کشتی و وسیع ترین کشتی کشتی سید و است یعنی با امام حسین میشه طی طریق امیر انجام داد پس چی همه اینها مقدمه رسیدن به اون کلام علی ولی الله اگر تو قدیر پیغمبر فرمود من به جبرئیل اومد گفت که آقا پیغام برسون بَلّق. پیغمبر خودشون تو خود به قدیر فهموندن که من سه مرتبه گفتم نه. خود به قدیر خودشون فهمیدن. چه نه؟ نمیگم پیغمبر که از همون روز اول وقتی که اومدن تاریخ کتاب تاریختون رو خوندید، قریش رو دعوت کردن، سه مرتبه قریش رو دعوت کردن و قضا درست کردن. گفتم من پیغمبرم بعدم گفتن علی وصی من، جانشین من، برادر منه بعدم به هر مناسبتی پیغمبر همین حرفو زدن که علی وسیع منه، دانشین منه، برادر منه. پس چه نمیگن؟ اینو که صد بار شما پیغمبر فرمودید. اونی که پیغمبر عبادر از گفتنش است در عالم که امام سجاد فرمود وقتی نوح در کشتی بود، دنیا رو آب گرفته بود، نوح در کشتی بود. خداوند حقیقتی رو بر او عرضه کرد که از عظمت این حقیقت نوه شیخ الانبیا نوه پیغمبر اول الزم از عظمت این حقیقت توقف کرد چه حقیقتی است این حقیقته که آقا عمر المؤمنین ولی الله العظمه این ولی الله العظمه که تو روز قدیر خدا به پیغمبر فرمود بله حالا همین ها رو مقدمه ارز کردیم که یه فضیلت از امیرال مومنین بگیم. فتح مکه است. تو فتح مکه همه شنیدید. پیغمبر رفتن شروع کردن. بوتها رو شکستن. رفتن تو خونه کعبه. بوتهای حول کعبه رو شکستن. رفتن تو خونه کعبه. تو خونه خدا شروع کردن رو شکستن. چند بود بالاتر از دست پی الله بود. به امر رسول الله آقا امیرالمؤمنین رفتن رو شونه پیغمبر بوتها رو شکستن دو بوت که دو بوت اصلی بود بالاتر از دست امیرالمؤمنین المؤمنین در زمانی بود که رو دوش پیغمبر بودن پیغمبر رسول دادن علی جان پا بز بذار سر من و بوتها رو بشکن امیرالمؤمنین المؤمنین فرمونن سمن بوتها رفتن و دو بوت رو شکستن اومدن پایینن نه آقا رسول الله هم گریه میکنن. اوامیرالد مؤمنی ارزان آقا جان ببخشید من حواسم نبودن شما گفتید بعد اصن انقدر حواسم به این بود که این بوت‌ها رو بشکنم متوجه نشدم پارو سر شما میذارم حتی این حرفا مستاقه اینه که ما بفهمیم یا سری بسائل و والله حقیقت ادب و خالق ادب آقا امیرالد مؤمنی پیغمبر بودن که نه علی جان من از این قصه دیگه نمیکنم. من الان لذتی رو چشیدم که یک بار دیگه چشیده بودن و از تکرار چشیدن این لذت گریه میکنم. کنن در گریه گریه زوق آقا سوال کردن چه لذتی؟ آقا رسول الله به معراج رفته بودن شبه معراج به جایی رسیدیم که جبرئیل گفت یا رسول الله من از این بالاتر نمیتونم تونم بیام پرو بالم می سوزه همه مقام کجا قابق و سنگا و عدنا. پیغمبر فرمودن من وارد مقام قابقا و سینا و شدم در مقامی که فقط رسول الله بودن و الله جل جلال خدا شروع میکنه به لسان امیر المؤمنین با رسول الله صحبت کردن صحبت ها ادامه پیدا میکنه وارد این بحث نمیشن وقت نیست صحبت ها ادامه پیغمبر دلشون حول میفته به این بحثایی که میشه یا آن دستی روی احساس میکنن نگاه میکنن میدونن دست سیداللهی آقامون امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب مقام قابل میزن. آرام میشن بحث های ادامه پیدا میکنه مجدد در دل آقا رسول الله حل میفته مجدد امر خدا آقا رسول الله خدا عمم میکنه و یا رسول الله زمین رو نگاه کنه مقام قابل عمی. پرده ها کنار بیره نگاه میکنن من امیر المؤمنین دارن مقام و قوسین رو نگاه میکنن دل پیغمبر التیام پیدا میکنه تو مقام و اون لحظه ای که لحظه ای لقا است پیغمبر میفرماند تو اون لحظه ای که من بودم و الله و نزدیکترین جایگاه و مقام رب ارباب بود لذتی چشیدم یا علی که الان وقتی پاتو گذاشتی روی سر من همون لذت رو دوباره تجربه کردم اهل معنا می لذتی که پیغمبر در مقام عرش الهی در مقام قابق و سن چشید روی زمین کجا پیدا کرد کف پای آقا ابی طالب خیلی قد بدونیم محبت آقا امیر المومن اما بحثمون که عرض کنم که در این شب ای نه این عوضش قرق باشم من تو این عرض کنم که این شب ها ادامه میدیم و فردا شبم باید جمعش کنیم و من این بحث رو یه دهه محرم طولش دادم ده شب پاکتشو گرفتم سه شب غیظ من بری عرض کنم که بحث این بود که ما در وادی ابراریم خوبای در خونه امام حسینیم همه عالم هر کی در خونه امام حسین رزم میخوره جزو ابرار در خونه امام حسین خوبای در خونه امام حسین اما اگر کسی میخواد جزء شهدای کربلا نه اینکه مثل اونا چون گفتن مثل اونا اتفاق نمیفته اما حول اونها باشه یعنی از خواست در خونه امام حسین باشه باید از مقام ابرار عبور کنه وارد وادی مقربین بشه یعنی از اینکه مثل همه مردم که دارن زندگی میکنن و با امام حسین ارتباط دارند و همه خوبند. از این وادی خروج پیدا کنه و وادی ورود پیدا کنه به وادی مقربین تو وادی مقربین عرض کردیم آیه قرآن می فرماید حسنات الابرار سیات المقربین یعنی خیلی حساب کتاب فرق میکنه اعمال فرق میکنه امام مسلم یه جور دیگه با برخورد میکنه همون جوری که امام مسلم با نوکراش برخورد میکنه با خواسش برخورد بکنه شب عاشورا حساب میکشه ازشون از اون هفته ها دو نفر حالا فرضش ارز میکنیم اینجا وادی وادیه سختیه ولی مقدمه, مقدمه ورود به این وادیه اینه که تو دلت جز سید و شهده چیز دیگری وجود نداشته باشه پس آ محبت پدر و مادر رفیق دوست دنیا کار پول ماشین همه اینها چی اینها نمیگیم نباید باشه ولی باید تحت محبت سیدالشهدا باشه یعنی اگر محب چیزی رو ما بالاتر از امام حسین دوست داشتیم بفهمیم تو اون امر ما نفاق داریم بارها و بارها تمرین کردیم تو زیارتهایی که رفتیم های شریف زیارت کردیم جامعه کبیر خونیم و آشورا خونیم همش گفتیم به انت و و اسرتی و مالی و نفسی همه چیزم فداد زیده شد اگر قرار باشه تو دلمون چیزی باشد که محبت امام حسین زیل اون باشه ما اینجا مشکل داریم هنوز نمیتونیم بسم الله و یا علی ورود به وادی مقربین رو بکنیم زمانی میتونیم یا علی بگیم به سید و شهدا و وارد بشیم به وادی مقربین که دل و وجودمون چیزی غیر از سید و نداشته باشه هر بخش از دلمون که غیر سید دو شهداب باشد بلا تحت ولایت شیطان و عمی کوفره. خب آقا ما چه کار بکنیم که این از بین بره ما هرچی گناه هم تو زندگی مو میکنیم بالا این است که غیر اهل بیت. ولی اون بخشی که اهل بیت که خلقومن فازل تینت ناست از, از ادامه گل خودشونه خودشون فهم بودن خلق خلقومن فازل تینت نا یعنی چی؟ یعنی هم شما ادامه گله ما خلق شدیده وقتی گله اهل بیت بشه که ازش گناهی متساعد نمیشه هرچی ما گناه تو زندگیمون میکنیم و از ما ساطع میشه از این بخشیست که متعلق به اهل بیت تو وجودمون نیست دروغ قیبت هرچی هست اولین کاری که باید بکنیم اینه که گناههایی که مرتکب میشیم کنار بذاریم آقا چجوری گناه ها رو کنار بذاری؟ من همین الان راحتتون بکنم ماها خودمون به هیچ وجه نمیتونیم گناه هانو ترک بکنیم تجربه کردید تا توبه میکنید تازه مقدمه گناه فراهم میشه امشب توبه میکنید دروغ نگی امروز پنش دروغ گفتی فر 10 تا دروغ میگی امروز قیب... توبه میکنی غیبت نکنی؟ فردا همچین جمع رفقات جمع میشه و بباعث قیبت خوبی هم جور میشه و شون قیبت کرد امشب نیت میکنی نگاه نامحرم نکنی تا دیروز باید تا سر آسمان ها میرفتی یه مورد بیش میباید نگاه کنی از فرد رزق زیاد میشه هم در رو میکنی روزی زیاد میشه همه اینا نشونده هنه اینه که ابلیس هم بیکار نشسته قسم خورده گفت تو به عزت جلالت نمیدارم اینا بیان گجا بیان چون اگر اینا وارد وادی مقربین تو بسات سید و شهده بشند آیه قرآن میگه اینها اگر ابلیس آخر سوره ساد میگه خدا من همه رو گمراه میکنم الا کسانی که بازه مخلصین باشه توی یه آیه دیگه چی میگه میگه همه رو گمراه میکنم الا کسانی که ورود پیدا کنه به وادی حیمن وادی حیمن وادی سید و شهده است تبقیه روایت مام صادق میشه جایی هم تشداد ولی خب حالا چون سریع روایت میگیم ما همون رو میگیریم ولی ولایت علی ابن عبی طالب حسنی و من دخل حسنی عملم عمل نذابی عمل پس ورود به وادی من و وادی مخلصین همون وادی مقربین سید و شهده است و تا وقتی که کسی اینجا وارد نشده امان نداره از شیطان حالا آقا ما چکار بکنیم؟ پس این گناه ها رو ببینید رفقا همه این گناه ها میوه های درختی است که منشأش اون تینتیه که متعلق به شیطانه متعلق به عمی که را در وجود ما هست دروغ غیبت همه گناه هایی که فکر میکنی تو ذهنت وجود داره همه اینا میوه این درخته یا باید شروع کنی تک تک میوه ها رو قطع بکنی که عمرت کفاف نمیده یا وقت ریشه رو خوش میکنی خود به خود همه اینها از بین میره چیکار کنیم ریشه خوش بشه صد اشانالا فرشب میگیم که چگاه کنیم که این ریشه خوش بشه که این همه گناه ها از بین بره تازه ورود پیدا کنیم به وادی مخلصین وادی مخلصین وادیه که وادی سید و شهده وادی سید و شهده وادیه که لذتی میدهد که روایت میگه در عالم هش. در يوم القیامت شهید چیه؟ شهید به کشته نمیگن که به شاهد میگن از که چرا میگن شهید؟ چون میفهمن شهید نظر میکند به وجه الله وجه الله چیه؟ اهلویت فهموندن والله نحن و وجه الله ما این وجه الله اما زیباترین وجه الله به فرموده جواد و لعمه آقامون ابن رزا جواد و لعمه فرمودن زیباترین وچه خدا سید و شم. این روز رسول الله وارد منزل ش... منزل از صدیقه شدن اماموسین وقل کردن شروع کردن گریه کردن بیبی دعاله از زهره سلام الله علیه سلاماتو الله آه. آه. آه. آه. آه. آه. بیبی دعاله مرزه داشتن یا <تصفيق> رسول الله چرا گریه میکنید؟ آقا رسول الله فرمونن الان خدا را در زیبا ترین وجه در آبوشکه در حدیثی از امام جواد علیه السلام هست که میفرمایند، به یکی از اصحابشون هر روز میری زیارت سید و شهده گفت آقا با مدینه کجا با امکانت اون موقع میفرماین بیری می هر روز بالای پشت بام زیر آسمان نگاه به شنق عالم میکنی نگاه به غرب عالم میکنی آیه قرآن چی میگه؟ میگه هر سو نظر کنی وجه خداست بعد جواد و فرمودن نظر میکنی به کربلا یعنی زیبا ترین خدا و سه مرتبه میگه السلام علیکه یا آبا عبدالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه زیارت بسیارت محسوب میشه هم میگه یوم القیامت در آلم بعد نظر میکنن به وچه الله انقدر لذت میبرن که 700 سال مدهوش میشن ملائک و هوری بهشتی میرن به خدا شکایت میکنن که خدا تو ما رو واسه اینا خلق کردی اینا اصلا ما نگاه نمیکنن اینجوری مستندر جمال سید و از اون بگم رفقا به هر روز و هر زمانی که مسافت داشته باشی تا سید و شهده. یعنی بمیری و بفهمیم که لقا پیدا نکردیم به سید و هنوز زمان داریم باید این مسافت در عالم برزخ باید طی بشه چون شما از ادامه گله اهل بیت خلق شدید باید این مسافت طی بشه اگر ته مسافت طی نشود چنان حسرتی کشید که آیه 56 سوره زمر میگه شیر مادرتون از اسخونتون میزنه بیرون چنان حسرتی کشید که اونهایی که در جهنم هستند این نمی نمی‌کشن مفسری میگن آیه 56 سوره زمان مال شیعیانه دوستان هم میرن مومنینه. که از دوریه از جن جنبالله چنان, چنان عذابی میکشن که اونایی که دو جهنمن نمیکشن چرا چون میفهمی اون وقتی می فوت میکنی میمیری جایگاه سید و شهدار و حول سید و شهده رو میبینی جایگاه خودت هم میبینی این حسرت بیچاره اما عرض روزه من عرض کردم ایام ایام اصارت اممی ساداته امروز روزی بود که به دستور ابن زیاد لعنت الله علی نامه نوشت به یزید ملوم گفت یزید دارن اینا کوفر رو به هم میریزند زینب رو بکشم یا اسیر بفرستم سمتت دستور داد مشاورین ابن زیاد ملعون بهش گفتن ببین تا وقتی که زینب حسین رو میبینه قدرت میگیره توان پیدا میکنه، و علیه تو مبارزه میکنه سر حسین رو از زینب جدا کن زینب دیگه نبینه زینشون. لذا امروز در تواریخ مقاتل نقل شده سر آقامون ابا عبدالله روسین و پنجاه نفر فرستاد شام اینو بگم و برم سراغ روزم رفقا یه مقتلایی واسه این ایام نوشته شده از بعد از آشورا که جرأت نمیکنم من بگم حتی لحوف سید ابن تاووس که مختصر نوشته سری گذر کرده واسه این ایامشو نمیشه خوند که چه به سر الله مورده یه دونه هم بگم خوبه شو بگم رفقه میگه فردا که اینو از کوف خارج شدن این پنجاه ملعون هر پنجاه نفر شراب خوردن و مست کردن مریم کربلا فرار کنیم از این روزه های نیام بریم کربلا رفقه سید الشهدا تو روز آشورا دقت کنید استادی هست از مراجع قوم الان زنده است ایشون فرمودن ذکری هست که از سید علی قاضی رسیده اگر این ذکر رو مداومت کنی واقعی آشورا رو بهت نشون میدن ایشون میگفتن که واقعی آشورا رو من و کسانی که این ذکر رو گفتیم دیدیم الا سه ساعت <تصفيق> که طبق روایت امام صادق هم همینه <تصفيق> که امام صادق فرمودن مصیبتی در <تصفيق> کربلا واقع می شود <تصفيق> که این مصیبت شما پرده میکشیم که هیچ کس نبینه و الا بساط خلقت جمع میشه ایشون و ما میفرمودند که از لحظه ای که سید و از صدر زین بر زمین افتادن تا لحظه ای که و شم جالس و علا جال صدره هیچ کس ندیده تو عالم چه اتفاقی افتاده جز زینب کبرا سلام الله علیه تو این سه ساعت تو قتلگاه چه گذشته که خدا پرده کشیده من نمیدونم من بمیرم برای اون مادری که دید شمر سینه پسرش نشست شروع کرد بون هيا بون هيا catalunya زبهوشا ومن الماء منهو